فصل هفتم زمستان سخت بود. هوای طوفانی به دنبال برف بوران داشت و بعد یخبندان شدیدی که تا فوریه ادامه پیدا کرد. حیوانات تا آنجا که ممکن بود در تجدید بنای آسیای بادی می‌کوشیدند چون کاملا از توجه دنیای خارج به مسئله آگاه بودند و میدانستند عدم موفقیت آنها و تأخیر در ساختمان آسیاب بادی سبب کامیابی و خوشنودی بشر حسود خواهد شد. آدم ها از روی بغض می گفتند که موجب خرابی آسیاب بادی سنوبال نیست می دلیلش نازک بودن دیوار هاست حیوانات با اینکه این حرف را قبول نداشتند مصمم شدند دیوارها را به جای 18 اینچ سابق به زخامت سه فوت بسازند دبعاً به سنگ بیشتری نیاز بود مدت مدیدی سنگ ها زیر توده برف بود و کار پیش نمی رفت. در هوای سرد ولی آفتابی بعد از برف مختصر پیشرفتی حاصل شد ولی کار جانفرسا بود و حیوانات مثل قبل امیدوار نبودند همیشه سردشان بود و معمولا گرس نبودند فقط باکسر و کلوور خود را به دست یعص و نومیدی نس بردند سکویلر خطابهای غرایی درباره لذت خدمت و شعن کار ایراد میکرد اما حیوانات از قدرت باکسر و فریاد خاموش نشدنی او که بیشتر کار خواهم کرد دلگرمی بیشتری می آفدند. در ژانویه آزوغ کم آمد. جریه قله به میزان متنابی تقلیل یافت و اعلام شد که به هر یک یک عدد سیب زمینی برای جبران کمبود قله داده خواهد شد. بعد کاشف به عمل آمد که قسمت اعظم سیب زمینی که زیر خاک انبار شده بود به علت اینکه روی آن را خوب نپوشانده بودند فاسد شده است. جز معدودی از آن بقیه نرم و بیرنگ شده بود گاه چند روز متوالی حیوانات چیزی جز پوشاده و چون در گاف نمی خوردند با قهدی فاصله ای نداشتند پنهان نگاه داشتن اوزا از دنیای خارج امری حیاتی بود خرابی آسیابادی آدم ها را گستاخ کرده بود و دروغای تازه ای راجع به غله حیوانات رواج می دادند. بار دیگر شایعه شده بود که حیوانات از غهتی و ناخوشی در شروف مرگند و دائما با هم جنگند و به هم نوع خوری و بچه خوری افتادند ناپل که به خوبی از نتایج بد برملا شدن وضع از بود آگاه بود به این فکر افتاد که از وجود آقای بیمپر استفاده کند و اخباری که شایعات را خونسامی میسازد منتشر سازد, متشر سازد. حیوانات تا این تاریخ با آقای ویمپرگ هفته یک بار به قلعه حیوانات می آمد تقریبا تماسی نداشتند ولی حالا چند که اکثرشان گوستند بودند انتخاب شده بودند که به طور تصادفی به گوش ویمپر برسانند که میزان جیره افصایه شفته است به علاوه نافل آن دستور داد که پیت‌های تقریبا خالی آزوغه را تا نزدیک لبیان ازشن می کنند و روی آنها را با تتمه آزوغه بپوشانند. در موقعیت مناسبی ویمپر را به انبار بردند و پیت های آزوقه را برو خش کشیدند ویمپر اقفال شد اما مرتبا به دنیای خارج گزارش میداد که در غلعه حیوانات کم بود آزوقه نیست. با وجود این در اواخر ژانویه مسلم شد که باید مقداری غله از جایی تهیه شود. در این روزها ناپل اون کمتر آفتابی میشد و تمام وقتش را در ساختمان مزرعه که درهای آن را سکهای حیولایی محافظت می کردند میگذراند و اگر خارج میشد با تشریفات و همراهی اسکورتی اسکورتی شکل از شش سگ بود که نزدیک به او حرکت می کردند و به هر کی به او نزدیک میشد میخوریدند. صبح های یک همدیگر حاضر نمیشد و دستوراتش را به وسیله یکی از خوکا بیشتر سکویلر ابلاغ میکرد. یکی از یک شنبه ها سکویلر اعلام داشت مرغها که دوباره آماده تخم هستند، هستند یک تخماها را تحویل دهند ناپلون به وسیله ویمپر قراردادی برای فروش چهارصد تخم مرغ در هفته را پذیرفته بود قیمت تخم مرغها قله و قوت مورد نیاز مزدعه را تا تابستان و رسیدن اوضاع مسایدتر تأمین میکرد وقتی های مطلب را شنیدند قلغلهٔ وحشتناکی راه انداختند احتمال لزوم چنین فداكاریای قبلا اعلام شده بود ولی آنها باور نمیکردند که ممکن است روزی عملی شود مرغها خود را آماده کرده بودند تا در بهار کرش بشوند و گرفتن تخم‌ها را در این موقع جنایت محض میدانستند از زمان خادی جونز برای اولین بار شکه انگلابی پیش آمد. مرقا تحت سه مرغ اسپانیایی جدا در مقام این برآمدند که خواست ناپل اون را خونسا سازند. به منظور بر شیب سقف تخم می و در نتیجه تخم ها به زمین می و می شکست. ناپل اون به سرعت و بیرحمان دست کار شد. در سرداد جیره مرقا را قطع کنند. و حکم کرده هر حیوانی که به آنون حتی یک دانه برساند محکوم به مرک خواهد شد سکه مراقب بودند که در صورت اجرا شد. مرقه پنج روز مقاومت کردند ولی بعد تسلیم شدند و برای دخوگذاری به لانه های خود برگشتند در این فاصله نه مرغ تلف شدند اجسادشان در باغ میده دفت شد و شایه کردند که مرقه از بیماری خروسک مردند ویمپر از این ماجرا چیزی نشنید و تخم مرقا در موعد معین تحویل شد و ماشین باربری بقالی هفته یک بار برای بردن تخمها به مزرعه آمد. در این مدت از سنوبال خبری و اثری نبود چنین شایه بود که او در یکی از دو مزرعه مجاور فاکس وود یا پینچفیلد مخفی است. روابط ناپلئون اون بازار این مجاور کمی از پیش بهتر بود مقداری الوار از ده سال قبل که درختها ها را انداخته بودند در حیات انبار شده بود و کاملا خشک و مناسب بود ویمپر به ناپلئون پیشنهاد کرد الوار ها را بفروشد. آقای پلکینتن و آقای فردریک هر دو طالب خرید بودند ناپل آن مردد بود که کدام را انتخاب کند هر وقت به نظر می آمد که قصد معامله با فردریک را دارد اعلام می شد که سنوبال در فاکس مخفی است. هر زمان که به معامله با پیوکینگتن متمایل می شد میشد می شد که سنوبال در پینچ است ناگهان در اوایل بهار مسئله وحشتناکی کشف شد سنوبال شبها مخمیانه به مزرعه آمد و شد می گرد. این خبر طوری حیوانات مزرعه را مسترب ساخت که شبها خوابشان نمیبارد. شایع بود که او هر شب زیر نقاب تاریکی به مزرعه میآید و مرتکب به انواع و اقسام کارهای زشنی شود بله می سطل شیر را واژگون می کند بعض را لگت مال می کند و جوانه ی درخت های را می, می رسم بر این شده بود که هر وقت خراب کاری پیش می آمد، به سنابال مربوطش می کردند اگر شیشده ی ای می شکست یا راه آبی مسدود می شد می گفتند که سنابال شبانه آمده و مرتکب آن شده است به کلید انبار آذوقه گم شد تمام حیوانات مزرعه متقاعد بودند که سنوبال آن را در چاه انداخته است و غریبه اینکه حتی بعد از آنکه کلید را اشتباهاً زیر کیسه آذوقه گذاشته بودند پیدا کردند باز هم به اعتقاد خود باقی بودند ماده گاوها می می‌گفتند که سنوبال مخفیانه و شبانه به جایگاه آنها می و آنها را در عالم خواب می دوشد شایع بود موش‌های صحرایی که در زمستان اسباب زحمت شده بودند هم با سنوبال همدست‌اند تا اون آن مقرر داشت که نسا د فعالیت‌های سنوبال رسیدگی دقیق به عمل آید در حالی که ها در ملازمتش و دیگر حیوانات به لحاظ احترام با کمی فاصله دنبالش بودند، خارج شد و از قسمت‌های مختلف تفتیش کامل به عمل آورد. هرچند قدم می‌زد و زمین را برای یافتن رد سنوبال بو میکرد. تمام زوایای تپیل، لانه لانه‌های مرغ و باغش را بو کشید و تقریباً همه جا رد سنوبال را پیدا کرد. پوزه پهنش را به خاک می‌مالید، چند نفس عمیق می‌کشید و با صدایی خش‌ناک اعلام می‌کرد: "سنوبال، اینجا بوده. بویش را می‌شناسم." و به اسم سنوبال، سگ‌ها دندان نشان می‌دادند و غرشی می‌کردند که خون را در بدن منجمد می‌کرد. حیوانات کاملا خود را باخته بودند. به نظر میآمد که سنوبال اثری است نامرئی که تمام فضا را احاده کرده و آنها را به هر خطری تهدید می‌کند. هنگام شب سکویلر همه را جمع کرد و در حالی که از وجناتش وحشت میبارید گفت مطلب مهمی است که باید بگوید در حالی که جهش های کوتاه عصبی می‌کرد یاد کشید. رفقا مطلب فوق را دفشوناگی شده است سنوبال خود را به فردریک مالک بود که قصد دارد به ما حمله کند و مسایم ما را بگیرد است قرار است در وقت حمله سنوبال راهنمای او باشد موضوع از این هم بدتر است ما تصور می دلیل تمرد سنوبال خودخواهی و جاه است ولی رفقا ما در اشتباه بودیم علت اصلی تمردش را می او از همان ابتدا با جنز همپیمان بود و در تمام مدت عامل مخفی او بود تمام این مطالب از روی مدارک کتبی که از او به مانده است و ما آخرین کشف کرده ایم ثابت شده است به عقیده من این موضوع مطالب بسیاری را روشن می کند. رفقا مگر خود ما ندیدیم که در جنگ گابدانی چقدر کوشش کرد خوشبختانه این تلاش ها بی نتیجه ما که ما شکست بخوریم حیوانات گیج و مپوچته بودند این دیگر بالاتر و بدتر از داستان تخیب آسیاب بود چند دقیقه طول کشید تا به کنه گفته سکولر پی ببرد بیلو و یا فکر میکردند که به یاد دارند که سنوبال گابدانی گاوبدانی پیشا پیشاپیش همه حیوانات حمله کرد و حیوانات متفرق را گرد آورد و به حمله تشویق کرد یک لحظه حتی وقتی که ساچمانهای تفنگ جونز پوشش را کرده بود نیستاد و مشکل بود این کارها را با طرفداری از جونز منطبق کرد حتی باکسر که سوال نمی کرد بود نجاست و پاهای جلو رازیر بدنش تا کرد را بست و با خوشی بسیار منظم کرد گفت من باور نمیکنم من خودم دیدم که سلوبال جنگ گاوبدانی با شجاعت جنگید مگر خود ما بلا فاصله پس از جنگ به اون نشان شجاعت حیوانی در جک ندادیم سکویلا در پاسخ گفت رفیق اشتباه کردیم حالا از روی مدارک مهمانی که به دست آورده میفهمیم که او میخواست است ما را گمراه کند باکسر گفت ولی او زخمی شد و ما همه دیدیم که از جراحتش خونجاری است سویل فریاد کشید این هم قسمنی از نقشه او بود تیر جونز فقط مختصر خراش ایجاد کرد اگر شما میتوانستید بخوانید من این مطلب را از اونی نوشته خودش به شما نشان میدادم نقشهشان این بود که سونوبال در موقع حساس علامت عقب نشینی دهد و مزرعه را به دشمن واگذار کند و تا حدی هم موفق شد یعنی رفقا میتوانم بگویم که اگر شجاعت رهبر ما آن نبود او در ای خود کاملا موفق میشد اگر بخاطر ندارید درست که جونز و کسانش در داخل حیات بودند چطور سنوبال پشت کرد و فرار کرد و عدهای از حیوانات هم به دنبالش رفتند آیا باز خاطر ندارید درست در لحظه ای که همه را وحشت گرفته بود و چنین به نظر می‌رسید که همه چیز از دست رفته است رفیق نافلعون با فریاد مرگ برد بشریت جلو شداف و دندانهایش را به پای جونز فرو برد از سمتی به سمت پرید و صدای برند گفت رفقا این را که حتما به خاطر دارید وقتی سکویلر غذایه را انقدر دقیق ترسیم کرد به نظر حیوانات آمد که همه را به خاطر دارند حال فرار سنوبال را در لحظه بحرانی جنگ بیاد آوردند اما باکسر هنوز غانه نشده بود بالاخره گفت من باور نمی کنم سنوبال از ابتدا افتاد خاندی است. آنچه بعداً کرده هم به دیگری است ولی من ایمان دارم که او در جنگ گابدانی رفیق خوبی بوده است سکویلر در حالی که شمرده و مکم صحبت میکرد گفت رفیق رهبر ما رفیق ناپلئون قطعا بله قطعا اعلام داشته است که سنوبال از ابتدا بله حتی از قبل از آنکه فکر انقلاب در سر باشد عامل جونز بودهد باکسر گفت خب پس قضیه صورت دیگری بده کرد البته اگر رفیق ناپل آنچنین میگوید حتما صحیح است سکویلر فیاد کشید رفیق حالا با دید صحیح قضایی را میبینی ولی با چشمان کوچک درخشانش نگاه زشتی به باکسر انداخت برگشت که برود ولی مکسی کرد و به طرز مؤثری اضافه کرد به همه حیوانات این مزرعه خوشتار میده هم که چشمان خود را کاملا باز کند برای اینکه شواهد موجود به ما نشان میدهد که در همین لحظه و در بین ما عدهای از مال مخفی سنوبال هستند چهار روز بعد هنگام اصر آن دستور داد که حیوانات در حیات جمع شد. وقتی که هم حاضر شدند ناپلئون که هر دو نشانش را به سینه داشت با نه سگ قول پیکرش که اطراف وی می کردند و با قرش خود ستون فقرات حیوانات را به می ظاهر شد او این اواخر نشان شجاعت درجه یک حیوانی و نشان درجه دو حیوانی به خود اعطا کرده بود همه حیوانات بر جای خود ساکت ایستاده و از فرس سر به گریبان داشتند گوی از پیش میدانستند که امر وحشتناکی در شرف وقوع است ناپلون ایستاد و با ترش روی نظری به بخوزار انداخت سپس زوزی بلندی کشید با آن صدا سکها جلو پریدند و گوش چهار خوک را گرفتند و آنها را که از درد و وحشت می نالیدند جلوی پای ناپلون انداختند. از گوش خوکها خون می و سکها از بوی خونهار شده بودند در بخت و تعجب عمومی تا از سکا به طرف باکسر پریدند باکسر که حمله سکا را دید سم عظیمش را به کار انداخت و لگدش در میان هوا به یکی از آنها اصابت کرده او را نفش زمین کرد و سک ملتمسانه به ناله افتاد و دوتای دیگر دمشان را لای پا گذاشتند و فرار کردند باکسر به ناپل آن چشم دوختا بداند سگ را رها سازد یا زیر پاله لح کند ناپل آن خطوط چهرهش تغییر کرد و با تندی به باکسر امر کرد که سگ را رها کند به مجردی که باکسر سمش را بلند کرد سگ زخمی زوزه کنان دو زانه گریخت هم همه خوابید چهار خوک در حالی که از وحشت میلرزیدند و از تمام خطوط چهرهشان آثار گناهکاری کاری می میشد، در انتظار بودند. ناپل آن به آنان گفت که به جنایت خود اعتراف کنند خوک همان چارخوکی بودند که وقتی ناپل آن جلسات یکشنبه را موقوف ساخت اعتراف کردند و چارخوک اعتراف کردند که از زمان اخراج سنوبال مخفیانه با او در تماس بودند و در تخریب آسیاب بادی به او کمک کردند و توافق کردند که مذهه را تسلیم فردریک کنند اضافه کردند که سنوبال به طور خصوصی به آنها اعتراف کرده است که از سالها پیش مخفی عامل بود. وقتی اعترافات تمام شد سگها بیدرنگ گلوی خوکها را پاره کردند و ناپل اون با صدای وحشتناکی پرسید آیا حیوان دیگری هست که مطلبی برای اعتراف داشته باشد سه مرغ اسپانیایی که مسئول تقیان مرغها در مورد تخم مرغها بودند جلو آمدند و گفتند که سنوبال در عالم خواب بر آنها ظاهر شده است و آنها را اقفا کرده که از عوامر ناپلئون سرپیچی کنند آنها نیز کشته شدند بعد قاضی جلو آمد و اعتراف کرد که در خرمن برداری سال گذشته مخفیانه شش ساقه گندم دزیده و شبانه خورده است بعد گوزفندی اعتراف کرد که در آب استخف شاشیده است میگفت این عمل را با پافشاری سنوبال کرده است سپس دو گوزفند دیگر اقرار کردند که قوچ نری را که از فدایان نافلان بوده موقعی که صرف میکرده آنقدر دوانده اند که مرده است همه در همان محل به بسیدند. اطرافات و مجازات آنقدر ادامه یافت تا از کشته پشتهی جلوی پای ناپل آن ساخته شد و هوا از بوی خون سنگین گشت از زمان جون از ای دیده نشده بود وقتی کار تمام شد بقیه حیوانات غیر از خوکها و سگها با هم به بیرون خزیدند همه حراسان و پریشان بودند و نمیدانستند که جنایت حیوانات در همدستی با سلوبالتکان دهنده تر است یا کیفر بی‌رحمانه‌ای که شاهدش بودند قدیم از این مناظر خونین و به همین پای رقت انگیز زیاد دیده بودند ولی به نظر همه چنین میرسید اتفاق اخیر که بین خودشان واقع شده بود از اتفاقات قبلی بشد است از روزی که جونز مزرعه را ترک گفته بود تا امروز هیچ حیوانی حیوان دیگر را نکشته بود حتی موشی هم کشته نشده بود حیوانات به سمت آسیا به نیمه تمام راه افتادند و کلوفر، موریل بنجامین گاوان گوسفندان قازها مرخا یعنی همه جز گربه که درست قبل از صدور رسول ناپلئون در مورد اجتماع حیوانات قیبک زده بود نزدیک به هم نشستند گویی نیاز به گرمایی یکدیگر داشتند مدتی همه ساکت بودند تنها باکسر ایستاده بود با ناراحتی از این سو به آن سو حرکت میکرد و ضمن سیها بلندش را به پهلوهایش می‌داد و گاه شیهی کوتاهی از می کشید بالاخره گفت هیچ سردر نمی‌آورم. هرگز باور نمی‌کردم که چنین اتفاقی در مزرعه ما پیش بیاید. حتما عیب و نقص در خود ماست. تنها راه حلی که به نظرم می‌رسد این است که باید بیشتر کار کرد. از امروز من صبحها یک ساعت تمام زودتر از خواب بَرَشم. و با قدم های سنگین به طرف سنگ رفت و دوباره سنگ جمع کرد و به محل آسیا به بادی برد بعد استراحت کرد حیوانات بیان که حرفی بزنند دور کلاور را گرفتند و خود را به او چسباندند. از روی تپه قسمت اعظم چراگاه را که تا جاده اصلی کشیده میشد مزرعه یونجه، جنگل کوچک، استخر آب، مزارع شخف شده را که در آنها محصول پرپشت سبز گندم سال نو نیش زده بود و شیروانی های قرمزرنگ امارات مزرعه را که دود از بخالیان متساعد بود همه را می دیدند از روزهای روشن بهاری بود سبزه و پرچینها با عشعه خرشیدی که بر سطح آنها تابیده بود تلایی میزد حیوانات با تعجب و شگفتی خاصی به خاطر آوردن که وجب به وجب این مزرعه که هرگز تا کنون چنین مطبوع مصفا به نظر آنان نرسیده بود از آن خودشان است کلوور به اطراف تپه چشم دوخت و اشک در چشمانش حلق زد اگر می توانست افکارش را بیان کند قطعا می گفت که از تلاشی که برای راندن آدمها کردند هدف این نبود منظور از انقلابی میجر پیر تخمش را در ذهنان ها کاشت وحشت و کشتار نبود اگر خود او تصویری از آینده را مجسم میکرد تصویری بود از اجتماع حیوانات در امن از گرسنگی و شلاو در تصاوی و هرکس فراخور زرفت خود کار میکرد و قوی حامی ضعیف بود همونطور که خود او در شب نطق میجر جوج مرغاوی ها را محافظ کرده بود در عوض نمیدانست چرا؟ به روزی افتاده بودند که کسی از وحشت سگهای درنده جرأت اظهار نظر نداشت و ناظر تکه پاره شدن دوستانش و شاهد اعترافات آنها به جنایاتشان بودند فکر تقیان در سرش نبود میدانست با تمام شرایط موجود و اشان بهتر از زمان جنزه است و مهمترین کار جلوگیری از بازگشت بشر است میدانست باید وفادار بماند، بیشتر کار کند، دستورات را اجرا کند و پیشوای ناپلون را قبول داشته باشد اما منظور از رنجی که او و سایر حیوانات برده بودند این نبود به این منظور نبود که آسیاب بادی را ساخته بودند و خود را و هدف گلوله‌های های جنز قرار داده بودند افکار کلوور این بود هرچند قادر به بیانش نبود بلاخره احساس کرد خواندن سرود حیوانات انگلیس تا حدی میتواند جایگزین کلماتی شود که از اوفته ادایش بر نمیآید و لذا شروع به خواندن سرود کرد حیوانات دیگر که گرد وی نشسته بودند با او هم صدا شدند و سه بار آن را پیاپی با هماهنگی تمام ولی آهسته و با لحنی پرسوز خواندند هرگز این سرود را این گونه نخواند تازه دور سوم را تمام کرده بودند که سکویلر همراه دو سک رسید و معلوم بود برای گفتن مطلب مهمی آمده است اعلام کرد که طی امر رفیق ناپل آن سرود حیوانات انگلیس منسوخ گردید از این تاریخ به بعد خواندن آن ممنوع است حیواناتی که خوردند موریل فرگاد کشید چرا؟ سکویلر آمرانه گفت تفریف به این دلیل که دیگر حاجتی به آن نیست سرود حیوانات انگلیس سرود انقلاب بود و در حال حاضر انقلاب به ثمر رسیده است و مجازات خائنین آخرین قسمت آن بود دشمن به ام از داخلی و خارجی شکست خودن. در آن سرود ما تمایلات خود را برای داشتن روزهای بهتر و زندگی بهتر بیان میکردیم و حالا که روز بهتر و زندگی بهتر داریم دیگر این سرود معنا ندارد هرچند حیوانات ترسیده بودند ولی چند تایی قصد اعتراض داشتند منتها گوسفندان بعبعه چهار پا خوب پا بعد را شروع کردند و مجال بحث پیش نیامد. بدین طریق دیگر سرود حیوانات انگلیس شنیده نشد و به جای آن مینیماس شاعر شعری ساخت که مطلع آن این بود قلعه حیوانات قلعه حیوانات هرگز از من به تو آسیبی نخواهد رسید و این سرود هر یکشنبه صبح پس از برافراشیدن پچم خوانده می‌شد اما به نظر حیوانات نه کلمات و نه آهنگ آن به پای سرود حیوانات انگلیس نمیرسید.